شنبه حالا تقریبا یک روز سن دارم انگار دیروز آمدم حتماً همینطور است چون اگر پریروزی وجود داشت وقتی آن اتفاق افتاد من آنجا نبودم یا اگر هم بودم باید یادم میآد البته می توانست پری روز هم اتفاق افتاده باشد و من متوجه نشده باشم در هر حال سعی می کنم از حالا بیشتر مراقب باشم و اگر چیزی از پری روزی آدم آمد یادداشت کنم. بهتر است از همین الان شروع کنم و اجازه ندهم ترتیب ثبت وقایع به هم بخورد. زیرا غریزه به من میگوید که این جزئیات روزی برای تاریخ نویسان مهم خواهد شد و به درد آنان میخورد. زیرا شبیه یک تجربه هم. دقیقاً شبیه یک تجربه هستم. امکان ندارد کسی بیشتر از من شبیه یک تجربه باشد و کم کم دارم متقاعد می شوم که این چیزی است که من هستم فقط یک تجربه نه چیزی بیشتر خب اگر یک تجربه هستم آیا تمام آن هستم؟ نه فکر نمی کنم. تصور می کنم تنها بخشی از آن هستم یعنی بخش اصلی آن ولی فکر می کنم ما بقیه این تجربه هم سهم خودش را در این رویداد دارد آیا موقعیت من تضمین شده است یا باید هوشیار باشم و از آن مراقبت کنم؟ احتمالاً دومی درست است. غریزه به من میگوید که هوشیاری ابدی بهای برتری است. فکر کنم این برای کسی به جوانی من عبارت خوبی است. امروز همه چیز بهتر از دیروز به نظر می رسد. دیروز در آشوب تمام شدن کار ساختن دنیا، ها در وضعیتی ناهموار و آشفته رها شده بودند و بیشتر دشتها در هم ریخته و مملو از بقایا و چیزهای بیارزش بودند. تمام اینها مناظر زشت و اندوهباری پدید آورده بودند. آثار هنری و و نمی توان با شکوه و زیبا را نمیتوان با عجله و شتاب خلق کرد. براستی این دنیای با عظمت و جدید یک اثر هنری زیبا و با است. با وجود اینکه زمان کوتاهی صرف ساختن آن شده ولی می توان گفت این دنیا به طرز حیرت آوری یک اثر هنری کامل است. در بعضی جاها ستاره های زیادی وجود دارد ولی در جای دیگر به اندازه کافی وجود ندارد. اما بیش این مشکل به زودی حل می شود. دیشب ماه شل شد. و از آن بالا پایین افتاد. یک مصیبت بزرگ. وقتی به آن فکر می کنم قلبم می شکند. در بین تمام چیزهای زیبا و زینتی هیچ کدام با زیبایی بی حد و حصر ماه قابل مقایسه نیستند و به پای آن نمی رسند. باید ماه را بهتر و محکمتر می بستند. کاش بتوانیم دوباره آن را بالا آنجا در آسمان برگردانیم. ولی البته نمی توان گفت ماه کجا رفته است. علاوه بر این میدانم دانم هر کسان را بگیرد حتما برای خودش پنهان می کند. چون اگر من هم باشم همین کار را می کنم. فکر کنم برای تمام امور میتوانم صادق باشم ولی تازگیها فهمیدم که عشق و علاقه شدید به زیبایی تمام وجودم را فرا گرفته است. با این تفاصیر نمی شود به من اطمینان کرد و ماه شخص دیگری را به من داد در حالی که آن شخص نمی داند ماهش پیش من است. اگر در روشنایی روز یک ماه پیدا کنم می توانم آن را به صاحبش بازگردانم. زیرا می ترسم کسی آن را ببیند. ولی مطمئنم اگر در تاریکی شب ماه را پیدا کنم باید دنبال بحانهی باشم تا در مورد آن چیزی به کسی نگویم. چون عاشق ماه هستم. ماه بسیار زیبا و دوست است. ای کاش پنج یا 6 تا ماه داشتیم آنگاه دیگر نمیخوابیدم هرگز از دراز کشیدن روی خزه های لب ساحل و تماشای ماه های آسمان خسته نمی شدم ستاره ها هم خوب هستند کاش می توانستم چند ستاره بگیرم و روی موهایم بگذارم ولی فکر کنم هرگز نتوانم اگر بفهمید ستاره ها چقدر از ما دور هستند، حتماً تعجب می کنید. چون از اینجا که نگاه می‌کنیم، به نظر نمی‌رسد که از ما خیلی دور باشند. دیشب وقتی برای اولین بار در آسمان ظاهر شدند، سعی کردم با یک نیزه چند عدد از آنها را بگیرم، ولی نیزه من به آنها نرسید و همین باعث تعجب من شد. سپس سعی کردم با پرتاب چند کلوخ آنها را پایین بیاورم. تا آنجا که می توانستم تلاش کردم، تا حدی که خسته شدم ولی هرگز نتوانستم یکی از آنها را بگیرم. چون چپ دست هستم، نمیتوانم سنگ و کلوخ را خوب پرتاب کنم. حتی وقتی که یکی از آنها را نشانه میرفتم، دیگر نمیتوانستم یکی دیگر را نشانه بگیرم. بعضی پرتاب هایم به آنها نزدیک بود و کلوخا چهل یا پنجاه بار دقیقاً وسط خوشه های تلایی ستارگان پرواز می کردند و پرتابهایم به ندرت به خطا می رفتند و اگر کمی بیشتر امتداد می آفتند می توانستم یکی از آنها را بگیرم. به خاطر اینکه نتوانستم ستاره بچینم کمی گریه کردم. فکر می کنم این کار برای کسی به سن و سال من امری طبیعی بود، بعد از آنکه کمی استراحت کردم، یک ثبت برداشتم و به انتهای حاشیه افق رفتم. جایی که ستاره ها به زمین نزدیک بودند و می آنها را با دست بچینم. در هر حال اینطور بهتر بود. زیرا می بدون آنکه ستاره ها بشکنند آنها را با مهربانی و ملاتفت بچینم. ولی افق، بیشتر از آن که فکر می کردم دور بود و دست آخر مجبور شدم از این کار منصرف شوم آنقدر خسته بودم که دیگر نمی توانستم قدم از قدم بردارم علاوه بر این پاهایم زخمی شده بودند و درد آنها آزارم میداد نمی توانستم به خانه بازگردم خانه دور بود و هوا داشت سرد می شد چند ببر پیدا کردم و در آغوش آنها خوابیدم جای خیلی راحت و گرم و نرمی بود. به خاطر اینکه ببرها بین بوته‌های توت فرنگی زندگی می‌کردند، نفسشان بوی مطبوع و شیرینی می‌داد. تا قبل از آن هیچ ببری ندیده بودم. ولی با دیدن خطوط روی بدنشان فوراً آنها را شناختم. اگر من هم پوستی مثل آنها داشتم، می‌توانستم یک لباس شب دلفریب و زیبا داشته باشم. امروز درک بهتری درباره فاصله ها پیدا کردم. پیش از این آنقدر برای داشتن چیزهای زیبا مشتاق بودم که با منگی میخواستم به هر چیز زیبا چنگ بزنم. گاهی ستاره ها خیلی از من دور بودند و گاهی آنقدر نزدیک بودند که انگار فقط 15 سانتی متر با من فاصله داشتند ولی بیشتر بود. افسوس که در این فاصله خارهای زیادی بود. اما در این میان در فرا گرفتم و برای خودم یک قانون ساختم. اولین قانون من این بود. یک تجربه زخمی از خار دوری می کند. فکر کنم برای کسی به جوانی من قانون خوبی بود. دیروز بعد از ظهر توانستم در فاصله ای چندان دور تجربه دیگری را دنبال کنم تا ببینم چه فایده ای دارد ولی نتوانستم چیزی بفهمم. فکر کنم یک مرد است. تا قبل از این هرگز مردی را ندیده بودم. ولی او شبیه یک مرد بود و مطمئنم که همینطور است. فهمیدم که در مورد این موجود بیشتر از سایر خزندگان و حیوانات احساس کنجکاوی می شاید یک حیوان باشد چون موهایی کسیف و چشمانی آبی دارد و شبیه حیوانات است. کفل ندارد، پاهای شبیه هویج هستند. وقتی می ایستد مانند یک مته می شود و خودش را به اطراف می تکاند. به همین دلیل فکر می کنم یک خزنده و شاید هم یک ترراح باشد. اول از اون می ترسیدم و هرگاه آن دو را اطراف می چرخید فرار می کردم. چون فکر می کردم می خواهد کند. ولی بعدا فهمیدم سعی می کند از من فرار کند. به همین دلیل دیگر نمی ترسیدم و با فاصله ی حدودن 18 متری او را می میکردم ولی او از این کارم عصبانی و ناخشنود بود در نهایت آنقدر ترسید که از درخت بالا رفت مدت زیادی منتظر شدم بعد کوتاه آمدم و به خانه رفتم یک شنبه هنوز بالای درخت است ظاهراً آنجا استراحت میکند اما فکر کنم با این کار تفره میرود چون یک شنبه که روز استراحت نیست شنبهها مخصوص استراحت است. به نظرم موجودی است که بیشتر از هر چیز دیگری دوست دارد استراحت کند. این همه استراحت خسته می کند. همینطور از اینکه فقط آن حوالی بنشینم و آن درخت را تماشا کنم خسته شدم. در شگفتم که این موجود به چه دردی می خورد. هرگز ندیدم کاری انجام دهد. آنها دیشب ماه را به آسمان برگرداندند، به همین خاطر خیلی خیلی خوشحال شدم به نظرم این کار درست کاری آنها را نشان می دهد. ولی ماه دوباره سرخورد و پایین افتاد ولی دیگر ناراحت نشدم وقتی یک نفر همسایه های به این مهربانی دارد نباید دیگر نگران باشد آنها دوباره ماه را برمیگردانند. می گردانند کاش می توانستم برای قدردانی از آنها کاری انجام دهم دوست داشتم چند ستاره برایشان بفرستم. چون بیشتر از نیازمان ستاره داریم. منظورم خودم هستم نه ما. چون می دانم آن موجود به این چیزها اهمیتی نمیدهد. این موجود نه و سلیقه دارد و نه مهربان است. دیروز عصر وقتی در تاریخ و روشن هوا آنجا رفتم دیدم کنار برک دراز کشیده و سعی می کند ماهی های کوچک خالداری را که در آب بازی میکردند بگیرد. به همین خاطر مجبور شدم یک کلوخ به طرفش پرت کنم تا دوباره بالای درخت برود و دست از سر ماهی ها بردارد. در عجبم که این موجود به چه درد میخورد؟ آیا اصلا قلب دارد؟ آیا نسبت به این موجودات کوچک هیچ حسی ندارد؟ آیا این موجود برای چنین کارهای نادرست و خشنی ساخته شده است؟ ظاهرش که اینطور نشان میدهد. یکی از کلوخا به پشت گوشش خورد و او حرف زد. با شنیدن صدایش هیجان زده شدم. چون این اولین باری بود که صدای کسی جز خودم را میشنیدم. حرفهایش را نمیفهمیدم ولی به نظر پرمعنا بودند. حس میکنم از وقتی فهمیدم او هم میتواند حرف بزند به او علاقه مند شدم. چون عاشق حرف زدن هستم. تمام روز حرف میزنم. حتی در خواب هم حرف میزنم. به همین خاطر بسیار جذاب هستم. ولی اگر کس دیگری را داشته باشم که با او حرف بزنم، جذابتر می شوم و اگر بخواهم می توانم یک ریز به حرف زدن ادامه بدهم. اگر این موجود یک انسان باشد، نباید او را به عنوان آن صدا بزنم. درست است؟ اگر از ضمیر آن استفاده کنم، از نظر دستوری درست نیست. فکر کنم او یک مرد باشد و باید از زمیر او برایش استفاده کنم. فکر کنم اینطور بهتر است. پس در این صورت بهتر است این گونه باشد. زمیر فائلی او، زمیر مفعولی او را، حالت ملکی برای او. خب، حال دیگر او را یک انسان به حساب می آورم، مگر زمانی که خلافش ثابت شود و تا آن زمان با زمیر او صدایش می زنم. روش بهتر از آن است که دوچار شک و شبهه شبه. شوم. یک شنبه ی هفته بعد کل هفته او را دنبال میکردم و سعی کردم با هم آشنا شویم. مجبور بودم حرف بزنم چون خیلی خجالتی بود. اما این موضوع برایم مهم نبود به نظر می رسید از بودن من در آن حوالی خوشحال بود. به همین دلیل از زمیر ما استفاده می کردم چون به نظر می رسید اینطور خوشحال تر بود. چهار شنبه حالا رابطه ما واقعا در حال پیشرفت است و بهتر و بهتر با هم آشنا می شویم. دیگر از من فرار نمی کند. این علامت خوبی است و نشان میدهد که دوست دارد کنارش باشم. این موضوع خوشحالم می کند. من هم سعی می کنم به هر طریقی که میتوانم برایش مفید باشم. به همین دلیل هم بیشتر به من توجه می کند. در طول چند روز گذشته، کار نامگذاری چیزهایی که بر عهده او بود را انجام دادم. این کار باعث شد تا احساس راحتی کند. در این کار استعداد ندارد و نمیتواند برای حیوانات اسامی خوب و معقولی انتخاب کند. از قرار معلوم بابت این کار بسیار سپاسگزار است. ولی اجازه نمیدهم بفهمد که متوجه این نقطه ضعفش شدم. هرگاه یک موجود جدید می‌بینم، قبل از آن که با سکوت ناشیانش جهل خود را نشان دهد، نامی برای آن موجود انتخاب می‌کنم و به این ترتیب مانع شرمندگیش می‌شوم. من چنین نقطه ضعیفی ندارم. همان لحظه ای که چشمم به یک حیوان می‌افتد فوراً می‌فهمم چه حیوانی است. مجبور نیستم حتی لحظه‌ای فکر کنم و اسم مناسب آن حیوان فوراً به ذهنم خطور می می‌کند. انگار که آن اسم به من الهام می شود در این مورد شک ندارم زیرا تا چند ثانیه قبل از آن اسمی در ذهنم نبود انگار از شکل و رفتار آن حیوان می فهمم آن چیست و چه حیوانی است یک بار وقتی دو دو از دور پیدا شد فکر کرد که یک گربه وحشی است این را از حالت چشمهایش فهمیدم ولی فوراً به دادش رسیدم و البته مراقب بودم که این کار را به صورتی انجام دهم که قرورش از دار نشود. فقط کاملاً طبیعی و با صدای بلند حاکی از تعجب و خوشحالی اسم حیوان را بر زبان آوردم و به صورتی رفتار نکردم که انگار میخواهم دانش خودم را بروخش بکشم. گفتم خب شرط میبندم اون حیوان دو دو باشه. اگر نباشه اعتراف می کنم که اشتباه کردم. سعی کردم بدون آنکه باعث ناراحتیش اش شوم توضیح دهم که چگونه فهمیدم آن یک دو دو است. تصور می کنم از اینکه نتوانست نامی برای آن حیوان پیدا کند و من آن را نام گذاری کردم کمی ناراحت شد. ولی با این حال مطمئن هستم در دلش مرا تحسین می کرد. از اینکه توانستم نامی برای آن حیوان پیدا کنم، خوشحال بودم و قبل از خواب با خوشحالی به آن فکر میکردم وقتی حس کنیم که چیزی را به دست آورده ایم ولو کوچک فکر کردن به آن میتواند باعث خوشحالی شود پنجشنبه. اولین اندوه من دیروز از من دوری میکرد انگار نمیخواست با او حرف بزنم نمیتوانستم باور کنم با خود فکر کردم شاید اشتباهی شده است زیرا من دوست داشتم کنارش باشم و حرفهای او را بشنوم پس وقتی مرتکب هیچ اشتباهی نشده بودم، چطور میتوانست نسبت به من نمهربان باشد؟ اما بالاخره مشخص شد که حق با من بود. به همین خاطر به جایی که اولین بار او را دیدم رفتم. اولین بار او را در صبحی که خلق شدیم دیدم. آن زمان نمیدانستم او چیست و نسبت به او بیتفاوت بودم. حالا این مکان برایم محلی انگیز بود و هر چیز کوچکی که می نشانی از وجود او داشت به همین دلیل اندوهگین شدم نمیدانستم چرا چنین حسی به من دست داده است زیرا یک حس تازه بود حسی که تا قبل از این تجربه نکرده بودم این حس همانند یک راز بود مؤمایی که از آن سردر نمی آورد وقتی شب فرا رسید نتوانستم تنهایی را تحمل کنم و به سوی پناهگاه جدیدی که ساخته بود رفتم تا از او بپرسم چه خطایی از من سرزده است و چگونه میتوانم اشتباهم را جبران کنم تا دوباره با من مهربان شود. ولی در آن هوای بارانی مرا از پناهگاه خود بیرون کرد و این اولین اندوه من بود. یک شنبه دوباره اوضاد دلپذیر شده است و از این بابت خوشحال هستم اما روزهای قبل اوقات سختی بودند برای اینکه اوقات خوشیم پایدار بمانند دیگر به روزهای سختی که پشت سر گذاشتم فکر نمی کنم سعی کردم چند سیب برایش بچینم ولی هنوز نمیتوانم آنها را مستقیم برایش پرت کنم موفق نشدم ولی به نظرم همین که نیتم خیر بود او را خوشحال کرد این سیب ها ممنوعه هستند و او میگوید با چیدن آنها به خودم آسیب میزنم اما مهم نیست چون اگر با این کار بتوانم او را خوشحال کنم چرا دیگر نگران آسیب دیدن خود باشم دوشنبه امروز صبح اسمم را به او گفتم و امیدوار بودم با این کار توجهش را جلب کنم؟ ولی اهمیتی نداد عجیب است اگر او اسمش را به من می گفت اهمیت می دادم و فکر می کنم اسمش از هر چیز دیگری برایم دلپذیرتر باشد خیلی کم حرف می زند شاید به این دلیل که باهوش نیست و نسبت به این موضوع حساس است به همین خاطر میخواهد آن را پنهان کند افسوس که اینطور احساس می کند چون باهوش بودن مهم نیست ارزش انسان به قلب اوست به مهربانی کاش می توانستم به او بفهمانم که یک قلب مهربان و خوب ثروت عظیمی است و چنین ثروتی برای انسان کافی است اما باهوش بودن بدون داشتن یک قلب مهربان فقر مطلق است گرچه کم حرف میزند ولی کلمات زیادی میداند امروز صبح با کمال تعجب دیدم که یک کلمه خوب به برد ظاهرا خودش هم فهمید که حرف خوبی زده است چون بعد از آن دو بار دیگر آن را خیلی اتفاقی بر زبان آورد همین خودش یک هنر است و نشان می دهد که از قوه ادراک خاصی برخوردار است اگر از این بزر به خوبی مراقبت شود و به نیکی پرورش یابد میوه نیکی به بار خواهد آورد این واژه را از کجا آورده است فکر نمی کنم قبلا آن را به کار برده باشم نه هیچ علاقه ای به اسم من نداشت. سعی کردم ناامیدی خود را پنهان کنم ولی گویا موفق نشدم. رفتم و کنار ساحل خزپوش نشستم و پاهایم را در آب گذاشتم. هرگاه به یک همصحبت نیاز دارم کسی که نگاهش کنم و با او حرف بزنم اینجا می آیم. آن بدن دوست داشتنی سفیدی که در برکه آب نقاشی شده است کافی نیست. ولی در هر حال یک چیزی است و وجود یک چیز بهتر از تنهایی است. وقتی حرف میزنم او هم حرف می زند. وقتی ناراحت هستم، او هم ناراحت است. با همدردی و دلسوزیش مرا آرام می کند. میگوید: ناراحت نباش دختر تنهای بیچاره، من دوستت هستم و خواهم بود. این نقاشی روی برکه دوست خوبی برایم است و تنها دوست من است خواهر من است هرگز نمیتوانم اولین باری را که مرا تنها گذاشت و رفت فراموش کنم قلبم از اندوه در سینه آب شد گفتم او همه دارایی من بود و حالا رفته است با ناامیدی گفتم قلب من بشکن دیگر بیش از این قادر به ادامه زندگی نیستم و صورتم را میان دستانم پنهان کردم. دیگر مایه آرامشی برایم وجود نداشت. بعد از مدت کوتاهی که دستانم را از روی صورتم برداشتم او را دیدم که آنجا بود: سفید، درخشان و زیبا. این شادی محض بود: پیش از این هم شادی را می شناختم. ولی آنچه اکنون تجربه میکردم چیز دیگری بود. چیزی همانند خلسه. بعد از آن دیگر هرگز به او شک نکردم. گاهی از من دور می شد. شاید یک ساعت یا تقریبا کل روز ولی منتظر می ماندم و شک نداشتم که برمیگردد. گردد. می گفتم سرش شلوغ است یا به سفر رفته است ولی برمی گردد. و همینطور هم بود. همیشه برمیگشت. گشت. شبهایی که هوا تاریک بود نمی آمد. زیرا یک موجود کوچک ترسو بود. ولی شبهایی که ماه در آسمان بود می آمد. من از تاریکی نمی ترسم ولی او از من کوچکتر است و بعد از من متولد شده است. بارها و بارها به دیدنش رفتم. وقتی زندگی سخت می شود او پناه من و مایه آرامش من است و واقعیت هم همین است. سه همه صبح مشغول کار بودم و به خانه و زندگیم می رسیدم. امدن از او دوری میکردم به این امید که تنها شود و پیش من بازگردد. هنگام ظهر دست از کار کشیدم و به تفریح پرداختم. دنبال زنبورها و پروانه ها میدویدم و میان گل شادی می کردم. این موجودات زیبا لبخند خداوند را از آسمان میگیرند و آن را با خود دارند. گل را جمع کردم و با آنها تاج و حلقه های گل ساختم. و خودم را با آنها پوشاندم. بعد از خوردن ناهار که چند عدد سیب بود، در سایه نشستم و آرزو کردم تا باز گردد و منتظر ماندم. ولی باز نگشت. اما مهم نیست. هیچ فرقی نمیکند، چون به گلها اهمیت نمیدهد. میگوید اینها آشغال و بدرد نخور هستند. نمی تواند انواع گوناگون آنها را از هم تشخیص دهد و فکر می کند این نوع تفکر یک امتیاز است. هیچ اهمیتی به من، گلها یا آسمان رنگی شامگاه نمی دهد. هیچ چیز برایش مهم نیست جز اینکه که کلبه ای بسازد و خودش را از قطرات زلال باران پنهان کند. تلپ و تلپ روی خربزه ها بزند، انگور جمع کند و میوه ها را امتحان کند تا ببیند رسیدند یا نه. یک تکه چوب خشک روی زمین گذاشتم و سعی کردم با چوب دیگری آن را سوراخ کنم تا طرحی را که در ذهن داشتم روی آن پیاده کنم. ولی ناگهان به طرز وحشتناکی ترسیدم. چون از سوراخ قباری شفاف و آبی رنگ بیرون آمد. من هم ترسیدم و هر چه در دست داشتم پرت کرده، پا به فرار گذاشتم. فکر کردم شاید یک روح باشد. خیلی ترسیده بودم. ولی وقتی به پشت سرم نگاه کردم، چیزی دنبالم نبود. در حالی که نفس نفس می زدم، به سخره تکیه دادم تا استراحت کنم و زانوان لرزانم آرام شوند. شاخه های یک بوته گل روز را کنار زدم و از بین آنها نگاه کردم با دقت و زیرکی نگاه می کردم و دلم می خواست آنجا باشد ولی روح رفته بود کنار سوراخ برگشتم دیدم که در سوراخ کمی گرد و غبار نرم و سرخ رنگ بود انگشتم را درون آن فرو بردم تا لمسش کنم ولی ناگهان فریادم به آسمان بلند شد انگشتم را بیرون کشیدم. درد وحشتناکی بود. انگوش را در دهانم گذاشتم و در حالی که از درد ناله می کردم بالا و پایین می پریدم. به زودی دردم تسکین یافت. حالا مشتاق بودم تا ببینم این قبار چیست و می خواستم آن را امتحان کنم. پس شروع کردم. کنجکاف بودم بدانم این قبار قرمز رنگ چیست؟ با وجود اینکه قبلا چیزی در این باره نشنیده بودم ولی ناگهان اسمش به ذهنم رسید. آتش بله، آتش بود. کاملا از نام آن مطمئن بودم. آنقدری که هر کس دیگر در این دنیا میتواند از چیزی مطمئن باشد. بنابراین، بدون معطلی نام آتش را بر آن گذاشتم. چیزی را ایجاد کرده بودم که قبل از این وجود نداشت. یک چیز جدید را به تمام دارایی های بی حد و حصر جهان اضافه کرده بودم. خودم این را فهمیدم و به خاطر این موفقیت احساس غرور می کردم. تصمیم گرفتم بروم و او را پیدا کنم تا در مورد آنچه انجام داده بودم به او بگویم. با خود فکر کردم اگر بداند حتما بیشتر به من اهمیت می دهد. ولی برگشتم و از انجام آن منصرف شدم. نه، اهمیتی نمیداد. میپرسید: آتش چه فایده ای دارد؟ و من چه جوابی به او میدادم؟ چون آتش فایده ای ندارد و فقط زیباست بسیار زیبا. به همین خاطر آه کشیدم و نرفتم چون آتش به هیچ دردی نمیخورد نمیشد با آن کل به ساخت خربزه ها را پرورش داد یا رسیدن میوه ها را جلو انداخت آتش یک چیز بیفایده، پوچ و احمقانه بود. حتماً آن را تحقیر میکرد و حرفهای نیشدار میزد. ولی آتش برای من حقیر نبود. گفتم آه، آتش، دوستت دارم. ای موجود سرخ رنگ و فریبنده. چون زیبا هستی و همین برای من کافی است. تصمیم گرفتم آتش را بقل کنم. ولی از این کار منصرف شدم. بعد قانون دیگری برای خودم ساختم. این قانون جدید شبیه قانون اولم بود و به نوعی سرقت ادبی محسوب میشد. یک تجربه سوخته از آتش دوری می کند. دوباره شروع کردم. وقتی به اندازه کافی آتش درست کردم، آن را روی یک مشت برگ خشک گذاشتم و میخواستم آن را به خانه ببرم. تا همیشه آن را برای خود داشته باشم و با آن بازی کنم ولی وزش شدید باد آن را پخش کرد و آتش با توندی به من حمله کرد. پس آن را پرت کردم و پا به فرار گذاشتم. وقتی به پشت سر نگاه کردم روح آبی رنگ سر به فلک کشیده بود و همچون یک تکه ابر بزرگ میچرخید در هم میپیچید و دور میشد. با دیدن این صحنه ناگهان ها نامش به ذهنم رسید. دود، گرچه تا قبل از آن نام دود به گوشم نخورده بود. به زودی، زبانه های زرد و نورانی آتش از دود بیرون آمدند و فورا نام شعله به ذهنم رسید. حق با من بود. این شعله ها اولین شعله های دنیا بودند. از درختان بالا می رفتند و با شکوه و زیبایی تمام منطقه وسیعی را در بر گرفتند. دود رقص بالا می رفت و حجم آن هر لحظه بیشتر می شود. با دیدن این صحنه دست می زدم، می خندیدم و با شعف می رقصیدم. آتش، شعله ها و دود بسیار عجیب، زیبا، شگفتانگیز و نو بودند. دوان دوان آمد. ایستاد و به آتش زد و برای چند دقیقه هیچ حرفی نزد. بعد پرسید، این چیست؟ آه، خیلی بد بود که اینطور مستقیم سوال میپرسید. مجبور بودم پاسخ دهم و البته که این کار را کردم و گفتم آتش است. ناراحت شدن از این موضوع که من همه چیز را می دانم، ولی اون نمیداند و مجبور است سوال بپرسد تقصیر من نیست. اصلا دوست ندارم اذیتش کنم. بعد از چند لحظه مکس پرسید، از کجا آمده است؟ یک سوال مستقیم دیگر که باید جوابی مستقیم به آن بدهم. آن را من ساختم. آتش دورتر و دورتر می رفت و منطقه وسیعی را دربر گرفت. اونیز کنار محلی که سوخته بود رفت و ایستاد. بعد پایین را نگاه کرد و پرسید، اینها چه هستند؟ زغال یکی از آنها را برای امتحان برداشت ولی نظرش عوض شد آن را زمین انداخت و دور شد هیچ چیزی توجهش را جلب نمی کرد. ولی من از آنها خوشم آمده بود خاکستر نرم و لطیف کبود رنگ را دوست داشتم زیبا بودند فورا فهمیدم چه هستند همچنین خاکسترهای گرم زغال را نیز می شناختم. سیبها را پیدا کردم و آنها را از زیر خاکستر بیرون آوردم تا بخورم. اشتهای خوبی دارم چون خیلی جوان هستم. بسیار خوشحال بودم. ولی وقتی دیدم سیبها ترکیده و خراب شده بودند ناراحت شدم. ظاهراً خراب شده بودند. ولی نه، از سیبهای خام بهتر بودند و آتش، آتش سیباست. فکر کنم روزی به درد بخورد. جمعه دو قبل برای لحظه ای او را دیدم. اما فقط چند لحظه بود. امیدوار بودم به خاطر تلاش برای بهبود اوضاع خانه تحسینم کند. چون با حسن نیت تمام به سختی کار کرده بودم. ولی نه تنها خوشحال نشد، بلکه از راهی که آمده بود بازگشت و مرا تنها گذاشت. اما موضوع دیگری نیز او را ناراحت کرده بود. چون یک بار دیگر سعی کردم مانع رفتن او به بالای آبشار شوم از دست من ناراحت بود. آتش حس جدیدی به من نشان داده بود. حسی که با عشق، اندوه و تمام احساساتی که تا قبل از این کشف کرده بودم متفاوت بود. حس ترس و این حس وحشتناکی بود. کاش هرگز آن را کشف نکرده بودم. با این حس لحظات تاریکی را تجربه می کردم. ترس شادی را خراب می کرد، رعشه بر اندامم میانداخت و به خود میلرزیدم. ولی نمی توانستم او را وادار کنم بترسد چون هنوز ترس را تجربه نکرده بود، به همین دلیل نمی توانست مرا درک کند.